عمرو العالمین الله علی محمد و آل طیبین اللهم ندارید که ببینید یه تا لم تكن فی ما مضى من شعبان غفر لنا فی ما که خداوند اما را از برکات ماه شهبان برخوردار کنه به خصوص از برکات مولود نیمه این ماه حضرت بقیت الله از جلال ناتوانا و فراجوه شریف و بتوانیم از سربازان و شهدا در رکاب آن حضرت باشیم و بحثی که انتخاب شده بحث، اندیشه اصولی حضرت آقا هست رهبر معظم البته این بحث هستی مقدماتی داره محورهایی داره با توجه به ادوار اجتهاد در فقه شیعه و در فقه امامیه باعث در واقع گوناگونی داره که شاید در حوصله این یعنی جلسه نباشه و فرصت ما نرسه من پنج شیش مهور در نظر گرفتم ولی هلا ببینیم به کجاش میتونیم برسیم یکی بحث خود ادوار فقه اصول امامیه است که معمولا به هفهش دوره تقسیم میکنن حالا با سلیبای های مختلف و بعد وارد آخرین دوره رو ما معتقدیم که دوره حضرت امام هست دوره انقلاب اسلامی که اجتهاد و فقه حصول امامیه یک دوره جدیدی رو آغاز کرده و فقه فرد محور تبییل شده به فر درواقع اجتماع محور یا فکر که یعنی تعریف می یک نظمی رو معتقد است یک نظم اجتماعی در جامعه باید شکل بگیره با محوریت اجاد و فقاهت که این دوره جدیدی هست و در حیرت با محوریت اندیش های امام و بر اساس همون اجتحاد قرن اساسی شکل گرفته که محصول بان خود قرن اساسی متن فقهی مهمی هست که محصول کار ده ها فقیه مسلم و اهل فکر بوده که این کار رو انجام داده که حالا توی در زیل این بحث در واقع از حضرت امام این دوره شروع میشه و کسانی مثل شهید صدر و و معظم رهبری اینها جز این, این دوره حساب میشن که افراد موثر و تاثیرگذار. در این دوره هستن که اینا را اگه بعدا فرصت شد خدمت شما عرض میکنیم من برای اینکه دوستان مستدیم سراغ خودمون بحث بریم یعنی در واقع محورهای دیگری که از معرفی اون دوره هشتم هست و محورهای دیگر رو بعدا ببینیم که اگر فرصت شد برمیگردیم در مورد مبانی اصولی حضرت آقا هم میدونید که آقا در معظم درس اصول به صورت خاص ندارند. یعنی این طور نیست مثل حوزه یه درس داشته باشند یا درس اصول داشته باشند. این مدت هایی که در تهران درس های آقا مطرح شده از بحث جهاد و بساس و بعد مکاسب محرمه و, و بعد سلات مسافر. و یه مقدار نماز, نماز جماعت محور بحث و بحث های فقهی بوده ولکن توجه ایشون به مباحث اصولی توجه بسیار جالبی هست یعنی ما خیلی افراد رو سراغ داریم که بحث اصول دارن جدا بحث فقه هم دارن اما این ترکیب فقه و اصول و تطبیق مباحث اصولی بر فقه کمتر به صورت کاربردی و به صورت تطبیقی آدم مشاهده میکن من در بخش فقط خ... چی بود؟ <تصفيق> یوا من مسئولیت اینا نباشه چون دخترای دانش آموزی اینجا نیسته بله در فقط در اون بخش من با همکاری بعضی از دوستان بحث صلات مسافر حضرت آقا رو بررسی کردیم تا حدود فعلا هم تمامم نشده تا الان حدود 38 قاعده ما استخراج کرده که حالا من همش رو نمیتونم اینجا فرصت ندارم اگه اجازه بدید اجمالا رد بشیم به جایی که اهمیت بیشتری داره خدمت شما عرض کنه یکی از قواعدی که ایشون دارن یعنی قواعد نهی که ابتکاره ایشون باشه منظور ابتکاره ایشون بسه تطبیقات قواعدی که مشهور اصولیین دارن و ایشون در فقه این قاعده رو برای استنباط و برای اجتهاد و فتوا دادن بر اساس همون در واقع بر اساس همون قاعده فتوا دادن و قاعده رو قبول کردن این موارد رو بخالا عرض کنیم خب، یکی از یعنی من اون قواهد مهمتر رو خدمت شما ارز کنم بحث سقوط اعتبار روایت به واسطه اعراز مشهور قدما این دو مبنا هست یکی مبنای مرماه خویی الله تعالی علیه هست و یکی هم مبنای مرموهای برو که آیا شهرت قدمایی حجت هست یا نه؟ خب مبنای مستحذر هستید که مبنای آیا این است که نه ما اگر که روایتی حجیتش ثابت بشه ما هم نوکر حجتیم دیگه حجت رفت روایت اگر معتبر باشه ما به روایت عمل میکنیم ولو اون روایت مفتابه هم نباشه کار با عمل مشهور نداریم مثلا واردی هست که فرض بفرماییم مرموم شیف توسین رو روایتی رو در تهذیب نقل میکنن مثلا بحث روایت مربوط به خمس هدیه روایت را رو نقل میکنم خود معنوم شیخ توسی قائل به خمس حدیه نیستن یعنی حدیه خمس نداره ولی مکتب و مدرسه آی خویی میفرماین که نماز چیکار داریم دارین با فتوه های آی شیخ توسی ما روایت با سنت صحیح معتبر به دست نمون رسیده ما به روایت عمل میکنیم جزا میگن حدیه خمس داره این یه مبناست مبنای دیگر این است که میفرمایند که نه اگر ما دیدیم شهرت قدما البته نه هر شهرتی شهرت قدما یعنی قبل از مرحوم محقق هلی اگر قدمای اصحاب ما یک روایتی رو عمل نکردن احراز ازش کردن ولو روایت معتبر هم باشه اگر ما دیدیم مثلا از مرحوم صدوق، ابن حقیل ابن جنید، شیخ مفید سید مرتضا ابسطلاه قلبی سندار در واقع کراجکی ابن زهره ابن براج ابن ادریس اگر اینها اومدن و فتوایی غیر از اون روایت داشتن ما به اون روایت عمل نمیکنیم این مبنا به مرموه های برو جلیه. و حضرت آقا به این مبنا اعتقال دارم در سلات مصافه درس بیست و پنجم دارم فرمایند که اعراض مشهور قدما از یک روایت موجب سقوط اعتبار از روایت می شود و معنای آن خچه در سردور روایت است یعنی میگویند که این روایت را قبول نداریم و از ائمه علیهم السلام اصلا صادر نشده است بعد یه نکته ای رو ایشون اضافه میکنن بفرمایند می هر چه سند آن قوی تر باشد این اعراض بیشتر مخل است کلم ازداد داد از صحتن از, از هر چه صحتش قویتر باشه این مردم ضعیف‌تره چون آیه شیخ طوسیه آیه مثلا صدوق کل کلینی شما الا کلینی باز یه بحث دیگری داره شماها این رو نقل کردید دیدید این امام هم هم سایه سند آل س... در واقع سندی با صحت عالی چطور عمل نکردی؟ این معلومه روایت مشکل داشته که این روایت رو دیدن نقلم کردند حالا که عمل نکردن میخوان برای اینکه قرینه ای پیدا کردند چون عصر قدما خیلی برای ما ارزشمنده عصر قریبل العهد به امام است اصل قدما از جهد قرائن اصل تلاعیه برای ما بسیاری از قرائن بسیاری از ارتکازات در اختیار اصحاب بوده که ما بر اثر گذشته زمان و بر اثر مفقود شدن بسیاری از کتب و عوامل مختلف به دست ما نرسیده خود قرائن ایسای قرائنی است که در دلها بوده منتقل نشده در سینه ها بو یه منتقل نشده. لزام می‌فرمایند که برای اینکه قرینه ای پیدا کردن برای اینکه این روایت قطعا از امام علی علیه السلام صادر نشده هر چند هر چند سننده حساب است. و بچش هم توضیح میدن بچش این است که می‌فرمایند که عمد دلیل بر حجیت خبر واحد عبارت از بنای او دلیل عمده سیغه اوغلا است و این بنا از طرف شاره تایید و امضا شده است همین اوغلا همین اوغلا بنا ندارند برعمل به روایتی که خود آن ناقلین روایت در مقام فتوا به آن روایت عمل نمیکنند کنند چون روایتی را اوغلا قبول نمی کنند شما وقتی یک کسی یک خبری رو به شما میده که خودش عامله به اون خبر نیست معلوم میشه که این خبر مشکل داشته که خودمون ناقل عامله بهش نیست این یه قاعده که قاعده مهمی هست و مبنای مرمه های که شهرت قدم را رو ایشون معتبر میدونستن بر اساس همین هست خب حالا از این بحث رد میشیم بحث مثلا بایده تقدیم نصب بر ظاهر در تعالیز عدله عدم سقوط روایت از حجیت به واسطه احتمال اعراض این که ما گفتیم اعراض مشهور باعث در واقع کسر روایت میشه روایت رو میشکنه در صورت است که یقین داشته باشیم به اعراض اما اگر نظر مشهور رو به دست احتمال دادیم اعراض کردن اون نه اون ضرری نمیده بعد حالا قواعد من ازش عبور میکنم چون ساعت هم نداریم من عمدالله سریعتر بشیم بعد یه قاعده دیگری داریم قاعده بسیار مهمی هست و اون قاعده این خیلی مهم ها بعض وقتا فقه ما اصول ما خیلی از عرف فاصله میگیره مدرسهی میشه حجرهی میشه در متن جامعه قرار نمیگیره فقیه گویا در یه عالم ای زندگی میکنه مردمم در یه عالم دیگهی زندگی میکنن بعضا ما این آسیب رو دیدیم ها. مثلا خیلی حتی خودت روحانجون وقتی که میان مکه مشرف میشن مکه بیان ایکاش ما بحث از این ملازیه رو میاوردونی سهمه ها رو میدیدن این تواف رو میدیدن ایام حجتمت ها رو میدیدن و بعد فتوه میدادن میدانن ذهنیتشون از از تواف و مقام ابراهیم این دوره که نماز رو پشت مقام ابراهیم بخوای بخونی اون. یا مثلا حد مطاف مثلا در واقع باید حتما از جلوی مقام تواف کنی تواف از پشت مقام جایز نیست خب اینها بعضا یعنی بین عینیت و اون مقامی که انسان داره فتوا میده یه مدار دوگانگی یه مدار ملموستن بودن احساس میشه ولی ویژگی که ما در این درس‌ها میبینیم خیلی اینیه خیلی کاربردی و کاملا با محیط عرفی ارتباط داره حالا یکی از قواعدی که داریم این است که مرجعیت عرف دقیق و خبره در تعیین و تشخیص موضوعات عرفیه شاب گای وقتا میاد یک موضوع عرفی رو به عنوان ملاک و موضوع حکم خورج قرار میده ولی بله مثلا در مقدار آب کر مثلا یا فرض بفرمایید در موارد مختلفی داریم از جمله مونی که مورد بحث آوا در اینجا بوده مسئله مسافت هر درس سفری است یک میفرمایند که در آن قسم از موضوعات احکام که جزء مفاهیم عرفیه هستند مثل مقادیر مرجع تعیین و تشخیص عرف است درسته سوال این است که کدام عرف یعنی مثلا انام در اینجا شارع به ما گفته که مثلا مسافت یک روز برای قصر نماز درسته؟ اینجا آیا ملاک عرفی با سامهه یا عرف دقیق یعنی ما باید دقت جازم رو بکار ببریم تا به این حد مسافت برسیم یا نه حالا ست میت، دیویس متر بالا پایین بشه حالا یک کلومترم بالا پایین بشه حالا گفتن هشت فرسخ حالا عرف وقته مثلا هفتانیم فرسخ رفته میگه هشت فرسخ شده اگه در واقع پیر مثل من باشه و با یه رفته باشه میگه بس ببا کونی هشت فرسخ ما که رسیدیم دیگه اما از اون طرف ممکنه یک کسی هشت فرسخ هم رد کنه. فرسخ بره. نه هنوز نرسیدیم آیا کدوم عرف ملاک است بفرمایند که در, در اینجا اگر شار عرف رو تعین کرده موضوعی رو مشخص کرده باید عرف دقیق باشه اما عرف دقیق و اهل خبره و احکام و تهداات شرعی تابع این عرف است نه عرف مسامح مثلا مرجع تشخیص میل عرف است چون میل حقیقت شرعیه ندارد میل همانی است که مردم استعمال میکنند که چند میله اما عرف متخصصین باید بگویند میل و فرسخ چقدر است بعد اشاره میکنم البته این بحث مهمی هست بعض وقتا بعض از مسامهات عرفی باز خود عرف قبول میکنه. حسن فرض بفرماید که شما میرید از اون گندم بخرید، مثلا یه ماشین گندم یه کامیون گندم خریدید. خب این کامیون گندوم، مثلا فرز بفرماید ده تن گندومه، لا این گندوم ها مقراری کروخ هست، مقراری خار و خاشاک هست، اینا در حدی که عرف این جور مصامحاتی که میگه خب طبیعتا گندم رو که کشاورز نمیگه پا... نمیاد پاک کنه که تو زمین نشه دیگه زمین رو بار کردن گندم رو درو کردن حالا لبلای گندم مدار خارو و خاشا. کس تخم علف هم است این جور مصامعه البته رفته شده است اما بعضی از بعض مصوبات عرفی مصاماتی است که در واقع کود عرف هم قبول نمیکنه منظور آقا اینجاست میفهمند که بعضی از بزرگان اینطور گفتند که این دقتها در میارهای شرعی ملاک نیست آنچه عرفن به آن میریا فرسخ رفته بشود کافیست می فرمایم این حرف را ما نمی توانیم انصافا بزنیم برای خاطر اینکه عرف بدون محاسبه از کجا میداند میل یا فرسخت چقدر است؟ بالاخره یک میاری و میزانی باید وجود داشته باشد ولی مرجع تعیین مقدار عرف است برای شک چون خود حیقت شعریه که نداره فرموده است که میل لیکن عرف کجا میگوید این مصرفت مثلا یک میل است آن وقتی که آن وقتی که این خاصه ها رو انجام داده باشد بعد خیلی مفصل اینجا صحبت میکنن میفرمایم که در حیرت مرحوم محبه رهیلی هم که در عبارتشون در, در شرایع میفرماید ولی المرادو از شهرت العرفیتو والعادیت و انهو انما نصبایل شهرت تنبیهن علا معقض الحجم بناهن علا انر رجوع علیه ها فی موضوعات الاحکام و الفاظها ها من المسلمات مسلم است که در موضوعات احکام یعنی بیان مفاهیم عرفیه مرجع عبارت است از عرف وقتی بخواییم بفهمیم میل چیست میل همان نیست که مردم میگویند، عرف میگویند میل عبارت هست از چهار هزار خب این چهار هزار واقعا باید احراز بشه نمیشه مثل همه سه هزار بشه این دیگه نمیتونه به مسافت بسیدیم بعد میفرمایند که این کار مبنی بر دقیقت انجام میدن باید محاسبه کنن به یک طریقی امروز به یه طریق در گذشتهم میفرمایند با دقت محاسبه می شده بود. اصلا مثلاً, مثلا این علمی که در گذشته اینطور بوده. علمی که علامت میل است بین مدینه و مکه نصف میکنن این مغی بر دقت است بله از عرف مسامه وقتی بپرسیم از اینجا تا فر چقدر است میگوید یک فرص ولی ممکن است چال کیلومتر باشد او میگوید یک فرسخ گایی اوقات همان آدم آن راه را چون قدری سخت است میگوید دو فرسخ در حالی که یک فرسخ به قضاوت عرف مسامح اصلا معیار نیست آن عرفی که مسامحه میکند در بیان معیارها و اندازه ها این عرف اصلا تواند میار باشد احکام شرعی تحدیدات شری تابع این عرف نیست بله بل... تابع عرف دیگری است که آن عرف متخصصین و اهل خبره این کار است آن هم عرف است ولی عرف متخصص باید بگوید میل و فرصد چقدر است او باید معین کند لذا برای همین مسافت شری شاید شنیدید که بعضی از دوستان های قل্লাহ زاده حفظه الله با ادهی از دوستان برای اینکه مشخص کنن این در واقع مسیرت و یومن یک روز در واقع چقدر میشه بری اینا اومدن و تعدادی شطور و تعدادی هم پیاده عده‌ای از رفقا یک مسیری رو انتخاب کردن یعنی. مسیری که نه بلندی و پستی داشت یه مسیری مسطح و در یک روز متوسط. نه روزهای خیلی بلند تابستان نه روزهای خیلی کرده زمستان در مثلا حواست بهار در یک روز مناسب اینها یک صبحی حرکت کردن با شطور و دهی از صبح موقعی پیش از آفتاب حرکت کردن منم راه رفتم تا ظهر رسیدن زهرم به استادن، نماس کندن، نماس کردن باز حرکت کردند تا گروب آفتاد. بعد یه گزارش دقیری از این کارشون برای آقای راه دادن. و آقا به قدر خوششون اومده بود که یک روز درست رو فقط اختصاص به این کار دادن. دقیقاً گزارش که دوستان داده بودن سر درس همه رو آقا بیان کردن. که در واقع ما نمیتونیم اهل مسامه باشیم. باید دقیق این مسیرت رو یا که الان نمیدونیم مثلا 24 کلومتره 202 کلومتره 21 کلومتره که اونا دقیقا یادم نیست. شاید به حدود 21 کیلومتر رسیده بودن به این رسیده رسودن و آقام حرف اونا رو قذیرفتن در مدنه ففلیم. بنابراین این مهم است که ما سراغ عرف بریم. بعد حالا البته یه بحث دیگری که من دیگه خیلی واردش نمیشم این که حالا مثلا شما میگید که ملاک میل مثلا چهار هزار خب زراق, زراق کی؟ مثلا یه بچه نوزاد دو سایه زراق داره چهار زراق این بچه یا یه چهار هم داریم مثلا اونقای رزازاده مثلا این وزن بردارهای افراد خیلی قبیل اینا زراه هاشون خیلی با هم دیگه تفاوت دارن خب شما ها نمیگید عرف کدوم زراه ملاک هست ولی چون میگن که در یه دیگری ما نوشتیم اون قاعده دوازنمون لحاظ مصراب متوسط در تعلیم مبادیر عرفیه مثلا میگید که آب کرسه و جبانیم درسه و جبانیم درسه و, جبانیم درسه و جبانیمه, و جبانیمه و کی؟ بجبه ها فرمو کنه بجبه متوسط لحاظ این یک قدره است. لحاظ مصداق متوسط در تعیین مقادر عرفیه محفوظه در موضوعات احکام و بعد حالا اگه اون متوسط مختلف بود چی؟ افراد متوسط جامعه اومدیم مثلا فهمیدیم که زراعشون چند سانده بسرن 80 سانتی 84 سانتی اگر باز مختلف بود اکتفاق به عقل می کنیم در استعاق متوسط متوسط به عقل رو میار قرار می خب این هم یکی دوتا قاعده در این زمینه. از این بحث عبور می کنیم بحث سه بعدی از بواسه خیلی مشهور است، بحث تمسک به آم در شبهه مفهومیه مخصص یا در شبهه مصداقیه مخصص دو تا قاعده یه معروفی است <تصح> <تصح> که آقا به مفصل وارد این معنا شدن در این جنس بنده صفحه 25 هست. در ظاهران جگسته یه چهران بوده می که اگر ما یه عام می داشتیم بعد این عام تخصیص خورده بود اون مسال معروف اکرمال علمان و بعد حلیقتا مخصص منفصل باشد یه متصل اگر باشد که بودش ظهور درست میکنی اگر مخصص منفصل باشه. یه جا گفت اکرم العلمان یه گفته یا لا تکرم این فصاق من حالا این فستاغم العلمان ما در محنای فسق در محفوم فسق مردد هستیم که آیا منتقب صغیره فاسده هست یا منتقب کبیره اینجا وظیفه چیه وقتی که نسبت به کبیر قدر متویدن است که اگر فاسف یعنی کسی که مرتکب کبیره بوده حتما فاسفه و اکرام او واجب نیست اما اگر مرتکب صغیره بود آیا سویر صغیر مرتکب سویره رو اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم یعنی داخل در آمه یا داخل در مخصص هست ایشون می که و بعد از مثال هایی که می همون بحث لا تکلیم همون مثال در واقع نرخش و حباسی مثال می و بعد می که اینجا مبتلا به اجمال هستیم نمی دانیم هایا فاسق عبارت است از مرتکب کبیره یا مرتکب سغیره و کبیره هر دو علصه ها کدام این اینجا تکلیف چیست بعد میفرمایند که به نظر ایشون میفرمایند که بنابراین علم به شمول دلیل مخصص بر این فرد نداریم اما میدانیم دلیل عام شامل این فرد هست چون عالم است و گفته است اکرم العلما این فرد که عالم بودنش مهرز است آیا از تحت دلیل عام خارج شده یا نه بعد فرمایم که پس دلیل خاص در مورد این شخص نظر ایشون اینه که نظرشون چی میشه؟ یعنی به نظرشون؟ بله یعنی تمسک به عام در شبهه مستاقی در شبهه مفهومیه به نظر مشهور اصولیین اشکالی نداره ایشتامون رأی مشهور رو دارن که می‌فرمایان که در مورد این شخص پس دلیل خاص این یعنی مخصص ما در مورد این کسی که مرتکب سریره شده اون مخصص حجت نیست دلیلش اینه یعنی اون توکرمل شامل این مرتکب سریره نمیشه و دلیل عام در مورد این شخص حجت است از آن تحبیر می به دوران عمر بین حجت از چی؟ بلا حجت بنابراین بل. آن چه بنده نتیجه گیری می این از که اسم زرا از تطریف این واحده می نفی اسم زرا در روایات سفر نیست پس ما اصلا با ذرا کار نداریم چون مفهوم مخصص شهری نداریم اما اسم میل و اسم برید هست در روایات در لسان شاره اسم میل و اسم برید هست ما نمیدانیم که مراد از این میل در این روایات چیست یا آن چیزیست که گنتبه بر فلان مقدار ما مثلا بعد یکن مثلا یک کیلومتر و 900 متر یا نه مراد از آن میل آن چیزیست که منتبق بر یک و شیش دهم کیلومتر این را نمیدانیم یعنی مفهوم میل برای ما روشن نیست برید هم یکی از همین عناوین است آیا برید عبارت از مثلا مقداری که منتبق با 20 کیلومتر است یا مفهومش منتبق است با آن مسافتی که 25 کیلومتر است یا 23 کیلومتر است کدام است نمیدانیم یعنی مفهوم برید برای ما روشن نیست چنانچه مفهوم میل هم برای ما روشن نیست اینجا مقتضای قاعده چیست؟ من تصور می کنم. این جزء موارد شبهه مفهومیه مخصص است. یعنی عدله عام و مطلق دلالت میکند بر وجوب اتمام صلات آن اطلاعات و عمومات تخصیص خورده است. به موارد بریدین و 24 میلیا سمانیت و فرازه اما ما در اینجا چون اقل و اکثره نمیدونیم در واقع اون مقدار مثلا مثل اون فسق فس آیا داخل در اوید پس یا نه ما چگار میکنیم تمسک به آم میکنیم و میگیم در نتیجه نماز تمامه تا زمانی که اینقدر بریم که برا ما احراز بشه که میل محقق شده اون مسافت شهری تا اون محقق نشده ما از واقع همون عام خودمون رو ادامه میدیم این هم یک مطلب. بهنم قصده که نشده خب یه سلوات آهسته بفرسید رو زبر اساس همین ایشون یعنی حالا حالا یه گفت اللهم بیر بیر دیگه شما <تصفح> کم پیش بریم تا بعد ببینیم یه جمع بندی چی بتونیم بعد حالا مثال دیگر حالا اگر که در واقع شبه مصداقیه بود چی؟ که به آم در شبه مصداقیه مخصص اینجا میشه کرد؟ تمسو که به آم میشه کرد یا نه؟ ایجو هر علمان بله اگر شبه شبه مصداقیه مخصص بود نظر مشهور این است که در تمسک به عام جایز نیست مثلا هم مورد شده اکبر علما بعد مخصص منفصلی آمده است که لا تکمیل وال منفصل حالا ما در مورد زید مشکل داریم یعنی در واقع آیا زید فاس زید عالم هست اما نمیدونیم این زید عالم آیا فاسق هست یا فاسق نیست اینجا باید چکار کرد؟ میفرماید که در اینجا در حقیقت عدم جواز تمسو که به آم در شبهه مستعبیه مخصص حالا چرا دیگه نمیتونیم در مورد این زید فاسق ما چرا نمیتونیم به اکرم الولما تمثب کنیم و اکرم الولما داریم زیدم عالمه اما چرا نمیتونیم به عکرمل الولما تمثب کنیم میفرمایان علتش این که ما ظهور اولیه آموز در واقع ظهور استعمالی بوده ولی مراد جدیش رو از مخصص فهمیدیم وقتی که شما از مراد جدی فهمیدید که مولا عالم فاسق میخواد اکرام نشه بعد عالم یعنی موضوع حکم عالم غیر فاسق است و این زید برای ما محرز نیست که عالم غیر فاسق هست یا نه یعنی وقتی مقایسه می‌کنیم بین دلیل عام و دلیل خاص می‌بینیم که اون دلیل خاص میاد و مراد جدی رو مشخص میکنه. وقتی که ما اراده جدی مولا رو فهمیدیم و در اساس همان اراده جدی مولا حرکت کنیم. چون اراده جدی در اکرم ال عبارت ابرازش از همان عالم قید فاسد. یعنی خاص می شود بر ظهور آم تأثیر میگذارد در ظهور آم. یعنی ظهور عام در عموم از بین ظهور عام را در عموم از بین میبرد، چون دلالت خاص بر تخصیص اقوایی از دلالت عام بر عموم است لذا ظهور عام تحت شو قرار می گیرد. نوارد های آغاست. دیگر به آن ظهور عمل نمی خب بنابراین اگر شما معنای در قثر سرات مسافر اگر ما، که به مصطفی داشتیم، یعنی میتونیم به اون آمین عمل کنیم. این هم یه بسیار. مانند چه؟ از میبر ادم هستش. وقتی که ما شیخ داریم فاضلیانه، از میبر ادم می‌ش. خب، بله. بل. حالا این همون تو قاعده بعدی از میکنم. اگر ما راهی برای اهراز داشتیم یه استثاب مثلا استثاب عدم فسق داشتیم یعنی حالت سابرش رو می دونستیم نه اصل بر عدم به این معنا که یه اصلی داشته باشیم که بگیم اصل عدم فسق هست مگر که ما استثاب عدم جاری کنیم اگر بتونید استثاب جاری کنید وقتیشون یه واحده دیگه دارن می که احراز موضوع به واسطه استثاب بعض وقتها اگر شما حالا نمیدونید این عالم رو در واقع فاسق است یا غیر فاسق است موضوع در موضوع عام شاملش میشه یا نمیشه یا داخل در موضوع خاص یا داخل در موضوع عام است در اینجا چکار میکنید اگر با استصحاب بتونید مشکل راحت حل کنید میگید خب این زید رو من قبلا میشناختم آدم عادلی بود اگر بتونم با این استصاب احراز کنم یه مشکل حل میشه ازایشون در همین بحث در همین بحث چیز احراز موضوع به واسطه استصاب میفرمایند که احراز موضوع به واسطه استصحاب میشه کرد در شبه مستاقی مخصص تا زمانی که شبه باقی است تمسک به آم جایز نیست اما اگر فرد مشکوک حالت سابقه داشته باشد و استصاب جاری شود موضوع آم احراز شده و با شبهه برطرف می شود بله مثل اینکه مکلف نمی داند. مقصدی که می خواهد به آنجا سفر کند هشت فرسخ هست یا نه این شکل در مخصص است مثلا چون عمومات تمام دلالت میکند بر اینکه کل صلات رو رباعیته و تمامند اما ادله قصر آن عمومات را تخصیص میزنند و بنابراین دلالت دارند که اگر سفر به مسافت هش فرسخ باشد قصر واجب است در اینجا شک داریم که آیا این مقدار مسافتی که آمده مصداق آن مخصص هست یا نه در یک چنین موردی که به آم جایز نیست جوینن چون که به آم در شبهه مصداقی مخصص است اما وقتی شما استصحاب کردید عدم بلوغ به مسافتی که یوج بلغه وقتی این را استصاب کردید معنایش این است که موضوع تمام یعنی غیر مسافر ثابت است آنچه موضوع تمام است عبارت از مسلی و مکلفی که غیر این مستثنا باشد این مسافر باشد وقتی با استصحاب موضوعی موضوع رو استصاب میکنید از احراز کردید که اینجا مسافت موجب غص پیدا نکرده پس با این استصحاب شبه برطرف شد موضوع تمام چی شد؟ موضوع تمام اثبات شد خب این هم پس بنابراین اگر از یه راهی شما بتونید واقع با حالت سابقه با استصاب یا با خبر واحدی با یه حجتی ثابت کنید طبق همون میتونید عمل کنید این هم یک واحده که در مطرح شده ما داریم گزارشی مدید از درس سلات مسافر آقا و تطبیقاتی که اصول در فقه تطبیق شده خب مثلا بحثایی که دیگه دارن بحث مثلا عدم حجیت اصل مثبت که لوازم عقلی در واقع مثلا استصحاب ها حجیت نداره یک بحث دیگری دارن حجیت استصحاب در شک در رافع و شک در رافعیت موجود میفرمایند که اگر شما شک دارید هم شک در رافع و هم شک در رافعیت موجود یه چیزی هست ولی نمیدونیم این در واقع این موجود رافعیت دارد یا ندارد در هر دو مورد ایشون میفرماید که استثاب حجت است برخلاف مثلا بعضی مثلا تفسیر میدارد به در رافه رو میگن اعتبار نداره می فرما استصحاب در شک در رافه و شک در رؤیت موجود در شواهد موضوعیه اعتبار داره بعد بحث در بوجحت مطلق زن رو و بحث انسداد رو ایشون مطلدان که عدم حجیت مطلق زن عدم حجیت مطلق مطلق زن از جهت انصداد کبیر از جهت انصداد صغیر اینا را مفصل در درس مطرح کردم، کردن و, و مبانیشون این است که در واقع ما انصداد باب علم را قبول نداریم بلکه در اصل قیبت باب علم باب مفتوح هست و میشود علم و علمی داریم برای استماد احکام یک قاعده دیگری مطرح شده و اون این است که بله اینکه شما علم رو معتبر میدونید مثلا میگیم حجیت عقلی علم علم معتبر است آیا ملاک علم حقیقی است یا ملاک علم عرفی است در احراز موضوعات شرعی بلا شک لازم است علم حقیقی و قطعی که با تشکیک مشکک زائل نمی شود چنین علم حاصل شود علم قطعی مثل این که می الان روز است هرچه هم تشکیک بکنن شما در این علمتون تزرزلی حاصل نمیشه آیا این علم مورد نظره؟ یعنی علمی که با تشکیک مشکک زائل نمیشه آیا این علم مورد نظر است آن چیز یا نه آن چیزی که لازم است عبارت است از, از علم عادی علم عادی یعنی آن چیزی که مایه سکون نفس انسان است که به آن اطمینان میگوید. مثلاً مثلا در تشخیص مسافت شرعی همین علماتی کافی است در زمانهای قدیم مسافر وقتی می رسید به جایی که میل را نصب کرده بودند، یک جایی بود میل علامت بود یک جایی منار نصب می کردن. این منار مثلا علامت ده فرسخ بود یا این میل علامت یک میل بود یا یک جایی تابلوهایی بود که روی آن می نوشتند. وقتی مسافر به اینجا میرسید اطمینان پیدا میکرد که تا اینجا چند میل است اگر میپرسیدند چقدر به ابتدای یک میل مانده می به نظرم مثلا 100 قدم مانده میل را نشان میداد مطمئن بود که وقتی آنجا رسید یک میل پیموده است می فرمایند که این در واقع کفایت میکنه پس ما وقتی که میگیم علم لازم است، علم حقیقی لازم نیست. بلکه اطمینان هم کفایت میکنه. مردم متعارف با علامت علم پیدا کنن. بنابراین باب علم منصد نیست. معمولا انسان ها علم پیدا میکنند به اونمون. بله، اگر کسی تشکیک کند، بگوید از کجا میدانی چنین چیزیست، ممکن است فران مقدار کمتر از مسافت باشد. یا فلان مقدار زیادتر باشد بله این علم با تشکیک مشکک ممکن است زائل شود که زا گفتیم علم قطعی نیست علم عادی است این یه مبلای مهم نیست و خیلی کارگردی است در, در واقع استف... در اجتحاد و در استنباط شهری بعد پس اینم در واقع یه قاعده شد عدم لزوم علم حقیقی غیرقابل تشکیک در احراز موضوعات بعد یک قاعدهی داریم به نام حجیت بیانه در موضوعات آیا در موضوعات بینه اعتبار داره یا نداره که ایشون بسیار بحث مفصلی داشتند. می که عدله زیادی ما داریم و اینکه بگیم بیینه در همه موضوعات اعتبار دارید وقتی تا عادل شهادت دادن کفایت میکنیم حالا به آیات قرآن استناد میکنم به چهار آیه از قرآن فقط جاکم جا بیانتون من رب بکن یا شهادتو بینکم ازا هزر احدکم الموت این الوستیت اصنان ازا با یا در باب طلاق فهم نه به معروفن، او فاره بومون نبه معروفین و عشق دو زبای عدلین من کن که در بحث طلاق است یا در بحث فجزا اون مثل ما قتل نه هم در بحث کفاره سیل یا در باب دین وستش دو شهیده من رجال کن و این لم یکونا را فرجلون و امراتان من من نه شوهده می فرماید این آیات مختلفی در اعتبار بینه داریم البته بعضی از موارد خود شارع استثناء کرده مثلا گفته که در زنا چهار شاهد لازم است. هست در غیر اون موارد ما به دو شاهد اعتقاد داریم بعد حالا طبیعی چیه خب اشکال می که شما در این چهار آیه بیانه حجت بوده چطور می این در واقع مقالطه ای دارید میکنه و جزء از کجا میخواهید حکم کلی صادر کنید بفرمایید اینجا پریگاه اولویته و حمیت که وقتی شاره مقدس در موضوعاتی که دارای اهمیت است شهادت عدلین را کافی میداند در واقعه شاره کاشفیت و طریقیت تام را برای این اماره قبول میکند بنابراین حجیت داره در همه موارد آم به طریب آولا به طریق آم حجیت قدام این یک دلیل ترسل به قرآنه بعد روایات زیادی رو مطمئن می کنن که دلیل دوم این است که ما در دعاوی قضایی بلا شک می دانیم بیانه حجت است که این نما عرضی بین نکن بالبیانات والعیوان یا البیانت والمدعی والیمینو الامن انکر و این قاعده کلی رو داریم بعد اشکاری بعضی از بزرگان بر این دلیل وارد کردن مثل آی که فرمودن حجیت بینه در باب غذا دلیل نمی شود که در غیر باب غذا هم حجت باشه شعره خاصه در فصل خصومت به بینه شما عمل کنید نزا تمام بشه شاید در موارد دیگر بیانه حجت نباشه بازیشون می که نه همون قیاس اولویت را به کار ببرند یعنی که آنجایی که خسومتی نیست به طریق اولا بایست و بیانه کافی باشد همین که شعر مقدس در امور هامی مثل رفع تنازهات به بیانه اعتماد می به ذهن انسان می رسد که این خودش کافی است برای اینکه ثابت کند بیانه در همه موضوعات حجت است بعد این دلیل دومشونه دلیل سوم روایاتی رو ذکر می مفصل این بحث بارد شدن روایت مسعادت ابن صدقه رو نقل میکنن علی ابن ابراهیم ان حارون مسلم ان مسعادت ابن صدقه ان عبی الله علیه السلام یقین کل شیعن هولت حلال حتی تعلم انهو حرامون به اینهی فتدهو مثلا مثل سو و دارکه مثل سو یکونو علیک قدشتریتهو و هو ول اول اول مملوک اندکه ولی اللهو هرون قد باع نفسهو او خود فبیع قهران که کسی خودش رو عبد معرفی میکنه ولی عبد نیست شما خریدیسون رو که میگن در این اواخر هم وجود داشت از آفریقا مثلا از گامیاب و سواحل چسبیده به اقیانوس اطلس از میان جنگل ها مردان و زنان رو با فریب یا با بازور میگرفتن سوار کشتی میکردند و به آمریکا منتقل میکردند این سیان آمریکا از نسل آن بیچارهای هستند که از خانهها و شرایشان دزدیده شدند. ممکن است این غلامی که در اختیار توست در واقع آزاد است. چون غلام آن کسی است که در جنگ غلام کسی است که در جنگ عصی میشه. این که عصی نشده بود. او امراه تحت که وحده آخه که او رفیباتو کرد و در هر چیز آدم شک میکنه دیگه. که حالا آیا واقعا این تصرفاتش درست یا نه؟ وقتی امام در اونجا فرمودن در اون روایت فرمودن است که علی اشیاء و کلها علاهازا همه حلال حتی یستبین لک غیر ظالم او حتی یستبین لک غیر ظالم او تقوم بهل بگنه. ماجرا که بگنه باشه. حالا بحثای سندیه سندی خیلی مفصلی هم کردن که بعضی ها گفتن مسعادت توبین صدبه توصیر نداره آمی است یا بطری است که میفرمایند که نمیشه که هم آمی باشه هم بطری باشه اگه بطری باشه از شیعان زیدیه است آمی حساب نمیشه درهای است. هست وقت مفصل صحبت کردند که در واقع در طرق علی بن ابراهیم هست در طروق ابن بولوئی هست و ما توصیقات اینها رو قبول داریم از نظر رجالیم قبلا نهی خویی بفرمایان ایشون توثیقات ابن قولبه و علی ابن ابراهیم رو قبول داشتند، اما از این نظر برگشتند اواخر عمرشان ولی به نظر ما این درست نیست عبارت این دو بزرگوار به خصوص عبارت ابن نشان دهنده این است که همه سلسله روات را صحیح میدانند چون در ابتدا داره بلاخ خرج تفیه حدیثا رویه انه انشزا... شزاز منر رجال و این روایتی رو نقل نکردم که شزاز نقل کرده باشد و این عبارت تقریبا صحیح است در توسیق همه روات میگوید من هیچ حدیثی در اینجا نیاوردم که از شزاز باشد شازه ها یعنی بید سفه ها حالا البته باید یک چیزی هم دارم بین حلالا بگیم بد نیست میگن که به نظر ما مس... مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد اینا یک نفرند فرمیرند که مرمه های جردی در کتاب کبیر در که ترتیب اصانده کافی و است ایشان ذکر می‌کنند که سندی وجود دارد که من البته آن سند را مراجعه نکردم اعتماد به فرمایش ایشان میکنیم که زیاد جد مسعده است. مسعدت ابن صدقت ابن زیاد این بوده اگر این باشه این قرینه بر این از که آنجایی که میگویند مسعدت ابن صدقت به پدرش نسبت میدن و آنجایی که میگویند مسعدت ابن زیاد به جدش و این در عرف عرب بوده که گاهی وقتا جد اگه معروفتر بوده شخص رو به جدش نسبت میدن در هر حال خیلی ایشون روایات زیادی رو در انجام میارند و می‌فرمایند که مقتضای این روایات این است که ما بگیم که بیگنه در موضوعات حجیت داره بعد, بعد از این دلیل سوم دلیل چهارم را ذکر می‌کنند فرمان دلیل چهارم بیانی است از مروه آیه حکی آیه کوی آی خویی رضوان الله تعالی من این ها آره رو هم چون بعض دوستان گفتن که نکته چی من میخوام با فضای درس خارج از آقا دوستان آشنا بشن که بعد خودتون بتونین نتایجی رو بگیرید تعبودی نباش، من نموناه اینی رو دارم اعرض میکنم فرمان که مرموی آی خویی رضوان الله تعالی بیان بیان است، البته مبنی بر یک پایه ای است که ممکن است آن پایه رو ما قبول نداشته باشیم. اما بیان بیان خوبی است و ایشان مفصل تبیین کردن. خلاصه اش این است که پیانبر فرمودن نهغزی برای نکنبل بینات وال این بیناتی که در کلام پیانبر است مراد بینه اصطلاحی نیست بلکه مراد بینه لوغری است، همون معنایی که در, و... در قرآن آمده است که در واقع میشه که من بین شما قضاوت میکنم به چیزی که واقع را روشن کنه. پس ازت اصلا نمی‌خوام راجبه بینه مصطلح صحبت کنم. به نظر من بعد که مفصل این وارد میشن در آخر در موقع نتیجه گیری فران به نظر ما بیانی لطیف و استدلال خوبی است. لاکن شرطش ین است که ما بیانات را در کلام حضرت به همان معنای مورد نظر ایشان بگیریم یعنی بگوییم بینه ما یبین الواقع نه اینکه مراد شهادت حتلین باشد لاکن بر این معنا دلیلی نیست بلکه برعکس آن دلیل است برای خاطر اینکه در زمان ائمه علیهم السلام بینه در کلمات این بزرگواران در مواردی استعمال شده است که در همین معنای اصطلاحی یعنی شهادت عدلین به رفته است معلوم نیست که از زمان پیامبر تا عصر مریم مسلم فرق کرده باشد یک مستاق واضح از ما و بین همین شهادت عدلین بوده است که در رفتار پیامبر و در اعمال وزات صدر اسلام اعتبار آن مسلم است بله اگر ما قبول کردیم که بینه در جمله اندماغذی به معنای اصطلاحی نیست بیان آن وقت بیان ایشان بیانه است. بنابراین آن چه نتیجه میگیریم این است که بینه در موضوعات مختلف حجت است به این چند دلیلی که عرض کردیم. خب، حالا از این منتقل بشیم، انشاءالا که خسته نشده باشیم. از این منتقل بشیم به یه بحث مهمتر دیگر و آن بحث حجیت خبر واحد در موضوعات. حجت بیانه را قبول کرده ولی اونی که معرکه و واقعا بسته سختی هم هست بست این است که آیا در موضوعات بیانه حجت یا نه دو تا قول خیلی مدهی هست بلکه مشهور آیون معتقدن به عدم حجیت خبر واحد در موضوعات ایشون خیلی مفصل هستند حدود 25 صفحه در این زمینه صحبت کردن من چون نکات خوبی داره یه اشاره میکنم اولا میگن بین عدل و سقه عموم و خصوص منوشه نه عموم و خصوص مطلب ممکن است کسی عدل باشه ولی سقه نباشه گفته بود که ما نرج و شفاعت من لایق و شهادتو بعضی آدم ها خیلی خوبند. در قیامت امید داریم که اینا شفاعت ما را بکنند. ولی در این دنیا ما قبولشون نداریم. شهادت بدن شهادتشون در محکمه پذیرفته چیه؟ نیست. آدم های سراساده هستن مثل من و شاید زود گل بخورن زود بهشون کلک بسنند. اینا لذا شفاعتشون قبوله ولی شفاعت... ولی شهادتشون یا خبرشون معتمنه. از بین عدل و آم آن مخاصم منبع است حالا مسئله حجیت خبر واحد در موزا است این بحث خیلی کاربردیه در مباحث مختلف فقهی مشهور بین فقها قدیم و حتی حسن عدم حجیت خبر واحد در موضوعات است لیکن در واقع مشهور این است که حجت نیست حتی معاصرین ما هم همین حرف زدن اما د... کسانی هستند که میگن در خبر واحد حتی در بین معاصرین میگویند در موضوعات حجت است. صاحب جواهر از شهید اول در ذکرا و از شهید در روزالجنان نقل میکنند و خود مرحوم صاحب جواهر هم این قول رو تقویت میکنه که, صاحب... که خبر واحد در موضوعات است. میگویم قول قب... قوی این است که ما بگوییم خبرواهی در موضوعات حجت است بعد از من رو مثلا جواهی شیخ اعظم رضوان الله علی آنطور که نقل کردن در کتاب تهارت ایشان هم احتمال دادن که خبرواهی در موضوعات حجت باشه من رو ما حمدانی هم در بحث صلات مسافرشان در کتاب صلات این قول رو تقریبا تقریبا تقریب میکنن. بعد یه سری از اقوال رو ذکر میکنن، میفرمایند قد یا اینطوری این گفتن به ذهنشان اینطور می رسد. من آی خویی هم به طور جزم خبر واحد را در موضوعات حجت می و در تقویت این بار استطالهایی ذکر می کنندن. حالا بعد وارد استدلال ها مفصل صحبت می‌کنند. یک استدلال تمسک به خود آیه نبه هست که میفرماید حالا میگن سه تا استدلال از مفهوم آیه نبه یکی چند تا روایات هست یکی بنای بنایه اغلاست این سه تا استدلال رو مطرم میکنن در مورد آیه نبه بحث مفهوم وصف رو مطرم میکنن که در واقع قرآن کریم فرموده است که نبع فاسق را در واقع فتح یعنی ولید که اومده چند خبری آورده ولید فاسق رو درش تویان کنید. مفهومش این میشه که اگر فاسق نبود تویان لازم ندارد. ولی خب بفرماید این استدلال به نظر ما کافی نیست این از آیه فهمیده نمیشود آیه, آیه شریف صرفا موید فست وصف فست مؤثر است در وجوب تویان اما آیا آنچه موجب میشود تویان واجب باشد فقط همین وصف فست هست یا چیزهای دیگه هم باشه شعر آیا از این جهت در واقع ساکته آیا با انتفاع وصف سنخ حکم هم برداشته می شود سنخ حکم یعنی وجوب تبیان و عدم قبول خبر مطلقا چه ناشی از فسق مخبر باشد و چه از غیر فسق برداشته می شود آیا چنین است؟ محل بحث در مفهوم بحث اینا در واقع مطرح میکنند از ایشون میگن که ما قبول نداریم مفهوم بحث را قبول نداریم بنابراین از آیه استفاده نمیشه که اگه فاسق نبود دیگه خبرش تباییون نداشته باشه بعد میفرمند استدلال دومی که بر حجیت خبر روایت میکنن در موضوعات به یه سری از روایات تمسک میکنن مثلا در واقع روایت حسین امن سعید که سندش ها مفصل ذکر میکنن روایتی در باب نکاح نقل میکنن روایات در مورد اخبار هلال و بعد از این که روایت هایی ذکر میکنن چون میفرمی که نه هیچ یک از اینها موارد خاصه در این موارد خاص حالا اگر قبول کنیم و سندش رو قبول کنیم دلالتش را قبول کنیم در این مورد خاص میتونید بگید که خبر واحد رو اما به نحوه کبرای کلی امکان نداره بتونید قبول کنید بعد در واقع چندین جلسه راجع به این بحث میکنن تا اینکه بعد میفرماید فتحست علمه مازکردان که بعضی از این روایت اصلا دلالت ندارند، بعضی هم معمولن به نیست اون آنهاست و بر فرض تناظر که بگوییم تک تک این روایت هر کدام جداگانه دلالت بر وجهی دارند دلیل بر این نمی شود که ما از موضوع خاص مطرح در این روایات به سایر موضوعات تعدی کنیم بعد می‌فرمایند خوب پس چطور در خبر واحد در بیانه تعدی کردید خبر واهد را با بینه مقایسه نکنید ما در بیانه در روایت بیانه تنقیه منات کردیم گفتیم اینقدر روایات مربوط به هجیت بیانه زیاد است که انسان میفهمد که اگرچه این بیانه در موارد خاص وارد شده است لاکن منات چیز دیگر است منات کاشفیت بیانه است خب بعد حالا آره این گفتن وقت تماعید باریم من این بحث رو باید جمع کنم نتیجه گیری کنم پس روایات رو همیشون قبول نمی کنم نکته مهم اینه می که بحث این بحث بنای اقلاق بسیار بحث مهم و کاربردی امروز می که آیا دل مهمترین دلیل حضیت خبر واحد سیره اقلاق است و گفتن که سیره اوغلا در همه جه شما در احکام به این مهمی میگید خبرواهید چطور در موضوعات میگید حجت نباشه. بعد مطالبی رو ذکر میکنن. ایشون میگن که من اصلا این بنا را قبول ندارم. میگویم این که میگوین بنای اوغلا استقرار پیدا کرده است. عمل به خبر من یوسبه این یک امر موهومی است این چنین چیزی وجود ندارد این دیگر متفردات ایشان ما میگوییم اوغلا اصلا چنین بنایی ندارد اینکه ادعا می‌شود استقررا بناؤ الاغلان بر این که به خبر مورد وسوق اعتماد میکنند چه در احکام چه در موضوعات نه این بنای اغلا را به این صورت ما اصلا قبول نداریم اغلا چنین بنایی ندارند در, صف... در جلسه 57 این مطلب را ذکر کردن حالا بعد یه مداد توضیح میدن ما عرض میکنیم چنین بنایی در بین اغلا مستقر نیست اینکه فرض کنید مردم در امور معاش و معادشان به خبر سقه اعتماد میکنن به آن ترتیب اثر میدهن این نه این چنین چیزی نیست حکس این قضیه صادق است یعنی هر جایی که قول هر مخبری چه سقه و چه غیر سقه وسوب شخصی به وجود آورد اغلا عمل می اینکه شاید مقدس این را قبول دارد یا نه بحث دیگری. رفتار اغلا این است که رفتار اغلا این است که اگر خبر مخبری در آنها وسوق به وجود آورد بر طبقه عمل می کنن. اگر در آنها وسوق به وجود نیاید بر طبقه خبر عمل نمی کند. وسوق یعنی اعتماد یعنی قبول در نفس که حد آن ببینید حد آن متناسب با مخبرون به هست. ببینید مواردش مختلفه. بنابراین حد وسوق و درجه وسوق با اختلاف درجات مخبر به تغییر میکنه گاهی مخبر به امر کم اهمیتی است وسوق مختصر و اعتماد مختصری به آن لازم است مثلا شما در اتاق نشسته اید کودک خردسال شما میگوید پدر فلان کس آمد یا فلان کس با شما کار دارد شما به حرف این بچه ترتیب اثر می دهید برای خاطر اینکه آن مقدار وصول و اعتمادی که برای یک چنین قضیه لازم است از طرف این بچه در شما به وجود می آید لذا بر طبق وصولتان عمل می‌کنید اما گای مطلب مهم است خطیر است برای شما آن مخبر به اهمیت دارد مثلا کسی به شما میگوید رئیس جمهور شما را به دفتر خود احضار کرده است شما به حرف او اعتماد نمی کنید تصدیق میکنید تحقیق میکنید از چه کسی تحقیق میکنید از آدم سقه تحقیق میکنید فقط نه به دفتر رئیس جمهور مثلا زنی می میزنید اون کسی که با جمهور مرتبطه رئیس دفتر رئیس جمهور صحبت میکنید آیا چنین چیزی وجود داره یا نه بنابراین موارد و درجاتش مختلف هست لذا ایشون در حقیقت معتقدند که علاوه این بنای اغلا این کشف بنای اوغلا چیز خیلی در واقع اگه در واقع خیلی چیز نباشه بگم که در واقع بگیم. نشابه برای خودمون باز نکنیم بگیم اگه آقل هستیم این کشف بنای اغلای که رد شرعی هم نداره کار مشکلی هست ایشون میفرمایند که چون در اینجا اون کسی که میخواد بخواد یعنی وسوق نوعی رو میخواد اما در اینجا وسوق شخصی رو اغلا قرار می قرار میدن. این بحث مهمیه که ما وصوق نوعی ملاک است، اطمینان نوعی یا وصوق شخصی، اطمینان شخصی بنابراین، لذا بنای اغلا ولی است که منات را وسوق شخصی خودشان قرار بدهند هر جا به خبر اطمینان و وسوق پیدا کردن، عمل می کنند در بعضی از خبرها به حد وسوق متعارف هم اکتفا نمی کنند تا علم عادی برای آنها به وجود نیاید عمل نمیکنند. کنن. مواردش مختلف هست. حالا اگر کسی اشکال کنه که پس شما چطور در احکام به خبر واحد عمل می بنای و او رو قبول دارید. می در اونجا عمده استدلال به خاطر این است که خود شاره این رو مورد تعیید قرار داده. انهایه علت این که ما در احکام خبر واحد سقه را حجت می دانیم این است که بلعلم و بالیقین می دانیم که اخبار سقه واحد در احکام از نظر ائمه علیه و سلام و اصحاب و سلام حجت بوده است برای شکن ولا تردیده این که افراد پیش یک زمین منشستن بعد دیگه توضیح می دن. بنابراین حتی می گن ما ولو تنزل نانهازا حتی اگه شما بگید سیره اغلا هم نداریم یعنی در بنای اغلا بر اعتماد بر وسوق شخصی خودشان تردید کنید حداقل آیا احتمال نمیدهید که عمل اغلا به خبر سهر به خاطر وسوق شخصی باشد اینکه احتمالش منتفی نیست بنابراین به مجرد اینکه احتمال آمد بنای اغلا از حجیت میفتد چون دلیل است. و در دلیل ربی باید به قدر متیقنش چی بشه؟ اکتفا بشه. خب حالا دیگه وقت گذشت ما مواردی از این قواهد رو ذکر کردیم. اما حالا چی میخواییم نتیجه گروه کنیم؟ ببینید جنبندی بحث این است که ما با در واقع مسلک حضرت آقا اگر بخوایم آشنا بشیم در همین مباحث میبینیم که شما اگر بخواید که منهج آقا را در بحث اصول بخواید در واقعه تبیین کنید این است که این مسلک ادامه در مشهور اصول این است و مشهور چیخ انساری است و در بیان مباحث ما با ابتکارات خوبی مواجه هستیم معنی بحث سیره اوغلا رو هیچ کس نگفته و حرفی است خیلی پرتکرار اما من جایی سراغ ندارم که کسی دیگه گفته یا نه من از دیدم که این بحث سیره اوغلا در خیلی جواب به درد میخوره و شاید در در واقع خیلی موارد ما همون اگر بحث اطمینان رو مطرح کنیم و ملاک رو اطمینان شخصی بگیریم این در واقع راهکار خیلی خوبه. در این روشی که آقا دارن در واقع اجتناب از خلف بین فلسفه و اصول که در خیلی جاها مثل کفایه شما می که شما شما می‌بینید چه قاعده الواحد و مباحث فلسفی فلسفه نباید داخل اصول بشه. اصول در واقع علم اس مربوط به اعتباریات مربوط به تشریح. ایران در واقع خلق نشدن از اینها بعد استفاده از اصول در فقه و تطبیق یعنی ما اصول رو فراموش نکنیم و جا به جا دقیقاً تطبیق کنیم ممکن است یک کسی خیلی اصول قوی هم داشته باشه ولی قدرت بر تطبیق نداشته باشه اینکه مستاق رو و صغراي اون کلی رو پیدا کنیم ما در این درست کاملاً مشاهده می بعد از طرف دیگر اعتدال در علم اصول بعضی هم زیادی اصولی هم یعنی اعتدال رو در شما در درس خارج رو ببینیم بعضی هم دیستن سراغ قواهد میرن و توجه به مباحث دیگر مباحث پیرامونی ندارن این اعتدال در استفاده از علم اصول بعد نکته دیگر که ما در این درست میدونیم احتمام به عرف گفتیم که فقیه نباید در واقع در ذهنیت خودش در عالم مدرسه و حجر کنه و بخواد فتوا بده باید در عینیت جامعه باشد خدا رحمت کنه من امام فرمود که العرف باباش فهمون بازار هوویش هوویش جلوی در واقعه قسمت کنه در نجف بیرید ابتدای شهار غور رسول سوب ال اونجا باید غرف رو پیدا کرد تا زبان باید با غرف صحبت کرد زمان ارتکاز غرفی رو باید از غرف استخراج کرد این یک مطلب مطلب دیگر این است که بنابراین ما اون چیزی که در مجموع در شاهد بودیم در دوره تکاملی اجتهاد که ما اجتهاد رو در دوره های مختلف میتونیم تعریف کنیم از دوره مرحوم شیخ توسی بعد در مرحله بعد در دوره محقق هلی و در دوره های مختلفی که ما در این کتابم، بهش اشاره کردیم دوستان میتونن مراجعه بفرمایند ولی در این های مختلف علم اصولی در واقع اصول و اجتاد که دوره ای به دوره افرادگری عقلی که دوره افرادگری عقلی دوره وصله مرhum محبیه هر دبیری است. دوره مرhum صاحب ماله صاحب مداری اینا اومدن هم خیلی متشدد بودن در خبر واحد به این راحتی خبر واحد رو قبول نمیکردند. از طرف دیگر در مشهورات هم در واقع رأی مشهور هم اونا زیاد میکردند. لذا خیلی آراشاز مرون صاحب جواهر رو ببینید قدم به قدم یه بحث مفصلی رو که اجماع و مشکور داره ای بحث میکنه آدم تعجب میکنه چون اینقدر بحث میکنه بعد میگه که از اینجا معلوم شد که ما زهر و علیه سید و و مثلا صاحب موالم درست نیست یعنی تمام تشکیقاتی رو که اینها کرده بودن صاحب جواهر جواب میده یعنی ما یه دوره افرادگری در این جایت داریم لذا دوره اخباریه اکسل عمل اون افراد بود دوره اخباریه دوره تفرید بود یه دفعه اومدیم ما گفتیم که آقا مثلا همه روایات کتب مشهوره ما اعتبار داره خب این افراط و تفریطها ها خیلی برای ما جرون تمام شده تا اینکه می رسیم به دوره مرحوم وحید که این اصول ما و این استعاده ما در حقیقت مدرسه وحید ادامه مدرسه وحید منتهاش در دل این دوره مدرسه های گوناگونی پیدا شده مدرسه مثلا انصداد باب علم مال میزای میرزا قمی قمی از وحیده معتقد به انصداد باب علم شده اما بعد یه چرخشی که پیدا میکنه میرسیم به دوره مرحوم شیخ که دوره شیخ انصاری دوره انفتاح یعنی ایشون اثبات میکنه حالا البته بعضیا میخوان بگن که ایشون هم انصدادی بوده و بحث در جای خودش بحث میشه اما الان این دوره همچنان از وحید شروع میشه در زمان مرحوم شیخ انصاری یه چرخشی و گردشی پیدا میکنه تا میرسد به زمان تاس در موقع تاسیس دولت این دوره هشتم که دوره تاسیس دولت است یه دوره جدیدی است یعنی ما از فقه فردی وارد میشیم و فقه میخواد ادعا کنه که ما نظم اجتماعی رو میتوانیم بر اساس فقوعات و بر اساس اجتهاد اجتهاد مستمر درست با اجتهاد جواهری بر اساس اجتهاد جواهری ما باید این مسیر رو طی کنیم. بنابراین این مسیری که تازه شروع شده ما ابتدای راهیم یعنی این دوره و این مدرسه یه مدرسه است که باید زمانها بگذره تا در واقع به در اون قوه خودش رو به فعلیت برسونه و اون حقیقت خودش رو نشون بده ما یک راه نارفته ای رو داریم طی می کنیم و در این راه نارفته قدم های بزرگی رو حضرت امام برداشتن قدم های بزرگی رو شهید صدر برداشته و قدم های بزرگی هم در طول این چند دهه از مقام معظم رهبری سراغ داریم که این فکر رو در واقع بحث ما اصولی بود بحث اصلی مکتب فقهی است و بحث در واقع مدرسه اجتهادی حضرت آقا که این در حقیقت ما وسط راه هستیم و ابتکاراتی که وجود داشته و کارهایی که انجام گرفته این چهل سال با گفتمان سازی گفتمانهایی در مقابل گفتمانهای رقیبی که در همه دنیا آمد که گفتمانهای مثل لیبرال دموکراسی و اونایی که باز به فقه اجتماعی و فقه در واقع نظام مهور اعتقاد ندارن در مقابل اینها ایستادگی کردن و حرف زدن این کارهاییست که داره انجام میگیره ولی راه نارفته است این برعهده من و شماست که این مسیر رو ادامه بدیم یعنی ما الان بسیاری از مباحث اصولی نیاز است که در اصول گذشته نیست اصول گذشته فرد مهوره برای تکلیف فرد در واقع نوشته شده ما اصول متناسب با فقه حکومتی رو باید های آینده روش کار کنند و فکر کنند بحث مسلحت رو همین بحث عرف رو سیره اقلا رو که شنمه ای از مطالبش بود بحث شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی رو که خیلی از آیون نتونه بپذیرن اینا در واقع جایگاهی است که باید در این راه های نارفته رو ما باید طی کنیم و به نتیجه برسیم و از خواهی میکنم که در دار طولانش رو بر خطفت شما هستیم